أعوذ بالله من الشيطان وجئ بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم صدق الله العظيم برادرای عزیز دیشب و امروز مثل که برادرای ما گفتن ما شاهد عزیزم بودیم که در تلویزیون ها نشر شده که یک تعداد از افغانها زنا و مردای افغانی به عقیده مسیحیت برگشتند و دین اسلام را ترک کردند و مرتد شدند و مسیحی شدند خب مسئله مسلمان شدن و یا مسیحی شدن یا به دین دیگه برگشتن ای از قدیم زمان وجود داشته و امروز اگر مقایسه بکنیم کنیم یک تعدادی از مردم در اروپا و امریکا به دین مقدس اسلام مشرف میشن ولی وقت از اینا مصاحبه میشه که شما چرا به دین مقدس اسلام مشرف شدین اینا میگن ما قرآن ازیم و شان مطالع کردیم ما ها را درک کردیم و من خودم صاحب خانه، زندگی، پول، همه چیز هستم قرآن سرمت تاثیر کرد و من مسلمان شدم ولی چرا یک مسلمان یک مسلمان در این شرایط مسیحی میشه در یک کنفرانس که در اوج تقریبا تعداد زیادی از رهبر مسیحیت بودن اونا بزرگی از اینا کسی به نام زوایمر نام داشت و این زوامر بردیگر گفت که شما کسانه که نام مشیینر، اقتداد کسایی هستند که در کشورهای اروپایی و آمریکایی برام میشینر یا مبشر میگن بشارت دهنده یک تعداد تربیه میشن و یا در کشورهای اسلامی میرن و مردم کوشش میکنن که به مسیحیت بکشانن. این احبرشان براز اینا گفت که شما متوجه باشون که مشکل است ما یک مسلمان حقیقی رن مسلمانه که قل و الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد خوانده باشه و معنای اژرب مشکل است که ما مسیحی بسازیم او هدف خدا بر از اینا بیان کرد گفت هدفی است که ما نمیخوایم که یک مسلمان مسیحی بسازیم و مشکل هم است که ما یک مسلمان قناعت بتیم که او مسیحی شود ولی ما یک کار میکنیم و او ایست که ما و شما باید مسلمان در عقیدهش در شک پرتیم و ای از دینش دور بسازیم تا که ملت و مردم خودش از این متنفر شد و ای کسایی که به نام مسیحی ما اونا را مطرح میکنیم اینا در صف ما بتانند که به ضد وطن خود به ضد مردم خود به ضد عقیده خود کار بکنن و به نفع ما کار بکنن. این حال عزیز وقتی که یک افغان مسیحی میشه علتش چی هست؟ علتش چی است. علت از طرف خود مردم است که نباید مردم داری این قسمت بگوید که ما به تفاوت هستیم ایلت در این قسمت خود حکومت است و علت در این قسمت خارجی هستند که در لباس دوست دشمن های که در کشور ما و شما حضور پیدا کردن و امی کار را می کنن. اگر ما مثلا خود کتاب مسیحیت بخانیم و یکی از معاصلین در پانتون یک جلدی از بایبل برش مسیحی ها داده بودن. این را ورد برای من و من در خانه خاندم بعد از خانده نزی تقریبا من بیزار چر قسمت شک خواندم یک کتابه که خورد کردم کردیم نام پینجا دلیل رد مسیحیت و چاپ شده وقتی که کتابه باز میکنیم منعیس یک انسان عاقل <تصفح> <تصفح> یعنی اگر ما ببینیم که عصر قناعت است یا کس مطالعه کرد یعنی وقتی که می کتاب انسان واس می کنم می در یک قصه اگر کس باز خواست پیش ما هست و ما امو کتابی که نوشته کردم رو لطفا بخونی و ما نمبر سفره در کدام قسمتش است مکمل چیزی که گفته کلش را نقل کردیم با سر تبصره کردیم مثلا در یک جایش میگه که لوت علیه السلام سعی کنین میگه لوت علیه السلام بسیاری مردم ما شما هست یک روز من در برادر باره در کسیت گف زده بدومک در مسجد لیلی پوهانتون بازی کسیت کسیت نیمه آخرش شنیده وقتی که قصرم رو برش بازیگر بازگر روز آمدن که والا یه استاد تیغمبرها رو دو میزنه یا یعنی نهقدر مردم ما اینجا اولادت مسیحی میشن اگر ما گپ نزنیم نگوییم باز میگه شما نگفتین اگر باز بگوییم تو کسه تو قسمت اولش نمیشنوی قسمت دومش باز میگه چیزی میگو استاد انت میگه اولاد تو مسیحی میشن تو بچه تروان میکنی برو در معصد کار کو تو بچه تروان میکنی پیش خارجی برو کار کو تو بچه تروان میکنی برو در امریکا و در لندن و تو بچید قرآن یاد نمیتی در روز قیامت همین تو که کافر شده خود یک تو ما کم میگه که پدر تو چه خود مسلمان بودی که در صفحه مذجد صاد بودی و از ما خبر نبودی و تلویزیون تو برم آورده بودی سی دیر تو برم آورده بودی دیشت تو برم آورده بودی اینترنت تو برم گرفته بودی ادیقل خود تو پدر مسلمان یک دفعه خود مرا میگفت که بچه در مجلس قرآن هم خوشتراک بکن یعنی پدر که اولاد خود قرآن یاد نمیدا ولو عصر نیست مثل سابق واره که از این جوج خبر نشه امروز مردم تمام روز کره زمین به یک که خرد مبدل شدن امروز هر کس برنامه داره پس تو مسلمان چرا بر اولادت برنامه نداری اسلام خوینه است که در روز مولود در روز مولود دگ پخته و غوری غوری نان برای مردم بته ریاکاری بکو ولی در خانه از اولادت از فامیلت از دخترت از وجیب بی‌خبر باش پیغمبر قبول داره که یک نفر دیگه برنج پخته بکنه بر مردم بته ولی خودش اولادش بره مسیحی شوه مسیحی چرا میشه مسیح اولاد تو میشه که تو بره اولادت قرآن رو نفهماندی درث دین برش نگفتی در دست قرآن نمیشه اونجا در تلویزیون که وقتی که یک عالم معلوم شد تو حوالونه دور میتی برش میگی بچه ای وزوگو این مولوی ها بسیار گپ میزنه این سید ها را وزوگو یک کنیم فیلم هندی بچه تو اون دو می سازه. فیلم بچه ای رو اروپایی و مسیحی میسازن و او را به فروختره وطن آماده میسازن و تو به تفاوت هستیم و باز وقتی که یک نفر را با رزی گفتن کسیت قسمت اولش نمیشه و قسمت دومش نمیشه باز میگه والا گت گت منو من برای شخص میگم که برادر عزیز در بایبل که برای بچه تو درس دادم میشه و او توزیع میشه و محسل پوانتون پوانتونورد برای من است عمل ذخاره پیش من حس من نگاش ما خبر نداشم آبستان سر را پسان خبر کرد که تو در روز جمعه صحبت بکن اگر من میفهمیدم یا تیلیفونی برای من میفهمم اون را گرفتم میوردم بر صفحه صفحه که برتان نشان میدادم دو اون میکنه که لوت علیه السلام میگه لوت که دو تا دختر خود بود دختراش به پدر خود شراب دادن و به امراش زنا کردن ما وقتی که گپ میزنیم برادر عزیز وقتی که ما گپ میزنیم اگر ما دروغ بگویم اگر ما غلط بگویم هر کدام شما حق دارین که از ما سند بگیرین بگوستا در کدام صفحه هست در کدام فلانی است. آل خوب مردم اگر بفاهمه که ما غلط میگیم حتی ما رو به ما حاکمه ولی من برده کتاب نشان میتوم انگلیسی شان پیشم هست فارسی شان پیشم هست بیا ای که آیا او کتابی که در او کتاب گفته شوه که پیغمبر خدا زنا میکنن آیا نشر کردن از این کتاب کفرست نیست؟ کفرست پدر که جازه میتک اولادشی کتاب بخوانن این پدر میتونن در روز قیامت در زیر بیرق رسول الله داخل شوه؟ نیست نیست در کتاب نمی میکنه پس. خب ده صفحه اش ایرا میگه ده صفحه دیگه اش میگه که عیسی علی السلام سلیمان علی السلام 700 تا ماچم زن داشت 300 تا دیگه هم داشت از 300 تا زن داشت 700 تا کنیز داشت باز کنیزهاش اکثرش بود پرست بود باز برای کنیزهای بود پرست خود بتخانه جور کرد حضرت سلیمان بر خدا را میگه و باز میگه خودش در آخر بتپرستی کرد خب کدام مسلمان ایل کدام جوان میتونه با gangs از این قناعت بکنه. یعنی کی قناعت میکنه؟ یک نفر بگه که من پیره ایسای مسیح هستم آیا ایسای مسیح امی کلام آیا ای کلام کلام خدا شده میتانه؟ که پیغمبر خدا را بنات پرست بگویم پیغمبر خدا را زناکار بگویم بگویم بلند بگویم که ای کلام خدا شده میتانه؟ نیشه. کلام پیغمبر خدا شده میتانه؟ نیشه. کلام دوست خدا شده میتونم بسی کلامی که ای گفت میزنه بغیر از کلام دشمن خدا دشمن خدا دشمن خداست کی یا باید نشان میکنن چرا اگر کسی بوده که کلام خداست یا کلام پیغمبر خداست یا کلام ایسای مسیح است ای ایسای مسیح هست و کفر کجا ببینین درباره داوود الله علیه السلام چی نوشته کردند برادر مازدلو خود نمیگم هر کدام تان حق دارن بیاین کتمه بیشینه دخانیم بر میبرم تان نشان تان میتون باز کنین با خانه عاملات بود بود اگه نبود مرا در پیش رو کلاگیده دارم ویزان بکنن نشان میکنن میگه داوود برادر ای قصر من از بایبل میکنم از کتاب مسیحی ها میکنم مسیحی هایی که به اینمی چیز عقیده دارن وقتی که بازی میتید فریب میتید ای کتاب برد میتید نام خدا و نام کلام خدا و نام کلام پیغمبر تو باید بفاهمی که در میبین ازی چی هست در میبین ازی چی هست بعضی کسا ها خیر از آزادی هست ای کتاب باید باشه بخانه خب این کتاب وقتی که آزادی از بخونه و تو از قرآن همین یعنی جوان خبر نداره و این کتاب وقتی که واس میکنه بارش خب در بین از کرده در قصه داوود علیه السلام نوشه کرده داوود سر یک کس بود کدام قماندارش بود فلانی بود میگه سر خانه مازو عاشق شد چه قصه عاشق شد سایکل عاشق هست میگه داوود سر بام قصر خود بالا شد طرف خانی امسایه سائل کرد دید که زن همسایه در تشناب غسل میکنه قرآن بر ما و تو میگه تو مسلمان هستی یک زن که با حجاب باش از اونش سایل نکو. و کل للمؤمنین یا قدوم ساره هم. تو برای مؤمنات بگوی رسول الله. که وقتی تو یک زن نامهرم دیدی که در حالت حجاب هم بود تو چشمت هم پوش کن. و این کتاب چی میگه کتاب مسیحی میگه که داود در سر بام بالا شد سونه خانه همسایه سر کرد و خانه همسایه زن همسایه میکرد، غسل میکرد داوود ایره سر کرد و سرش عاشق شد آیا این کلام خدا یا پیغمبر خدا میگه؟ باز میگه وقتی که سر از عاشق شد باز ایر برش نفر روان کرد باز ای قماندان رایی کرد در جبهه باز ایره کشته شد آها پیش ازی که کشه و باز زن خانه خود خواست و در خانه امرائزی هم بستر شد که زن همسایه العیازو بالله بازی هم به شد خانه ازی باز خانه معامل دار شد شوش که از جبهه آمد داود ترسید باز ایر خواست و باز بالاخره ایر روان کرد تا کشته شد یعنی ده تومت سر داود علیه السلام. تومت زنا تومت سل کردن به طرف زنای نامحرم. و بالاخره میگه باز خانی ازی زن اشتک شد نام بچش باز سلیمان بود یعنی پیغمبر خدا رمه که ای ولد زنا بود و در بایبل است بایبل بایبلی که امروز با نام کتاب مقدس این نشر میکنن پس برادر عزیز مثل از این یک جای دیگهش خواندم میگه یعقوب علی سلام که خدا کشتی گرفت یعقوب که خداوند کشتی گرفت العیاذ بالله باز میگه وقتی که یا تمام شب کشتی گرفتن بالاخره میگه باز خداوند بچم گرفت زانوی زیر دندان گرفت یعنی چیزهایی که بخوانی یک تک کفر توهین در مقابل الله توهین در مقابل پیغمبران توهین در مقابل هر چیزی که ببینی چیزهایی نوشه میکنن که انسان نمیتونه که اتا بسیاری کلماتش هست کنم در زبان گفتن نمیتونه پس برادر عزیز چرا یک افغانی آماده میشه که ایت یک دین که دوین از این قسم تحریفات آمده که خدا و پیغمبر خدا را درشنامیت این رو بپذیره چیگه پس گبده, چی؟ گبده کجا هست گبده ایست که اینال بسیاری کسا هستند که اول مسلمان ها در قسمت اولادای خود به تفاوت درس دین، درس قرآن، درس نماز بر اولاد خود نمیده بسری که خودش به نماز چیه؟ من مایی از اولاد خود خبر نداره که اولادش چی میکنن. خودش به مسجد میره در ختم خبر نداره که من امشب دوست ساعت 2 شدم در خانه اولادای چی میکردن. و آیه قرآن میگه یا ایها الذين آمنوا قوا انفسكم و اهليكم نارا خودو بقایا بکنین و اولادایتان از آتش دوزخ بقایا بکنین. تو چرا خودت متدین و بتفاوت در مقابل اولاد هستیم برادر عزیز این مشکل خود ما هست مشکل خود ما هست وقتی ما میخیزیم وقتی که دولت میگه که والا آزادی باشد از آزادی خود یک اندازه داره. آزادی خود از خود یک اندازه دارن اونجا در قانون نوشته هست که برادر عزیز هیچیز باید مخالف اسلام نباشد و این چیز این هر چیزی که بود بزرد اسلام هر چیز هر،, هر کس هر کار رکت به تفاوت باشه برادران عزیز چند وقت پیش اونا یک یک‌جا پتا نظر داشته باشین در قصه‌ای است که کسره مسیحی بساز. واه تو میگن, میگن اگر یک افغانی مسیحی میشه به ضد وطن خود به ضد مردم خود کار میکنه، ایره هم میگه ما تو میسازیم مثل صدا حسین که یک چند سالی جنگ میتیم، جنگ میتیم، دیگرت که شد، پس خود ما خودش اعدام میکنیم. صدا حسین چندین سال به نفع آمریکا کار میکرد. دیگر روز خودش خیست خودش ایدام کرد خودش خیست سلام و به هزارا مسلمان به خاطر رضایت امریکا کشت و در زندان‌های های خود از بین بود بلاخره دیگر از خودش در دار کرد در دا پالوی خانه ما تب عدلی بود در خیلیم کورچ کده دمی پیش کفیتری های تب سی سای فاروق از جبل سراج است یک آن خوفتر که من می شیش می گفتوم قصه می تو مسئله بگم من چی مسئله بگم آل وقت وقت شما داکترا هست شما بگید افغانستان چی هست آمد گفت استاد عزیز گفت استاد این شاو بسیار یک جسد خطرناک آوردن در طب عدلی من رو دکتر شیشت جسد چی هستن گفت یک خانم اروپایی آوردن در طب عدلی که این خانم مبتلا HIV و مرده فوت فوت شده گفتال فالاوردیش ده اینجا که ما ایره آماده میسازیم بازی را روان میکنه با وطنش خب دکتر است ببین چی گپ است گفتو شما ببینید این گپ یک دکتر است گفتم میشه شما فکر بکنین که در افغانستان شفاخانه است کدام دکتر قوی است اینجا کدام امکانات تداوی است. این زن مبتلا به این از اروپا در غانستان بر چی آوردن؟ بر چی آورده داکتر سر؟ گفت این رو وقت که در بین در اینجا میارن گفت خودتان فکر بکنی ما, داکتر سر. ما خوب به این ای نتیجه رسیدیم که این زن رو در بین مؤسسه بچه های جوان به اخل وقتی که در مؤسسه رفت او میگه بیخ در مؤسسه نه پولیس هست و نه هسکر هست و نه پدرت هست و دموکراسی هست و کتازی زنا بکن اینال فکر بکن کتازی چند تا جوان افغانی ما و تو اینجا مبتلا به ایز شده ایزن دکتران رو شا که کس که مبتلا به ایز میشه بازو بسار اقدهی میباشه میخواه که خودم خود تباه شدم یک 200 نفر دیگر رو همچی کنم تباه بکنم اینال برادر باید از دیگر قسم نمیشه از طریق آگاهی از قرآن قران شناسی برادر عزیز وقتی که تو در یک جای میری اگر حکم خدا را سر تطبیق نکنی اگر در مؤسسه زنا بکنی مبتلا به ایت سی فکر بکنی دو سال با سی سال با دکتر کشف میکنه که زندگی تباه است و به می که ای است شما ببینید در قسمت جوان از این خاطر از حرکات احساساتی باید انسان تیز شود اگر میخواهیم اگر میخواهیم که اولادای ما از این مرس و ازی از کفر و ازی از بیدینی نجات پیدا بکنن رجوع بکنیم به قرآن شریف از مولایم تقاضا بکنم که به بینم جهت درس شروع بکن از دیگر تا به شام از شام تا به خفتن از اولاد هفت سالی خود گرفتن تا پیر 70 ساله در درس قرآن بشینیم تا که قرآن به وامیم اگر قرآن ما را از شر اینان نجات نده هیچ چیز دیگه نجات داده نمیداد اینم تسلیم اگر ما و شما بگیریم مشا ده غیر ازو برادر عزیز اینامل در هر جایی که ببینی از هر وسیله ای که ببینه بسیاری قصابش میه آمد گفت استاد بعضی از جوانات آلمان هستن اول اینا رو برد زده وقتی که سن فاول دوما خلاص کردن بر شان که برادر بین فیس بتین گفتیا میگه واسه ما با فیس نمیل گفت تا برین عقب نامبر تا نشون بتین برتان فیس میتم ده پیدا بکنید گفت اونجا برای ما یک راهنمایگا که یک روز یکس یک آمد برای ما در داخل پوانتون. گفت مونتا برای ما یک را مانده. آه اگر راه مانده آ اگر کلیسا را تضمین کنه باز تو میتونی در ادوام بدی گفتن اول بسیاری کسار از مجبوریت‌هاش استفاده کرده اینا دینشان دین باطل است اینا کتابشان کتاب منسوخ است کتابی است که داوود او تحریف آوردن کتاب است که در دین خدا ساعتی کردن سر خدا توجین خدا را توحین کردن کردند پایگانبرا توجین کردن انسان معقول با عقل این را نمی پذیرد، لکن از چی استفاده می کنند؟ از غریبی مردم موت استفاده می کنند، از بیشوارگی مردم موت استفاده می کنند، از نقاط ضعف اقتصادی مردم بیشوار استفاده می کنند. اینها تروریسم فکری را با کار می برند. تروریسم ف... فکری یعنی چی؟ یعنی دید که یک بیچاره غریب از ناتوان است، روز می یک دو کیلو که این بر تو عیسای مسیح روان کرد عیسای مسیح یس میگی بچه خدا. as awesome. بچه خدا برات روان کرده و یک قسم یک انسان بی سواد یا یک تعداد جوانای بیچاره که در کشورهای غربی هستن دیگر را ندارن کار برشان نیست موسسه قبولش نمیکنن و بالاخره میگه به با یک شرط تو را کار میقیم تو را قبول میکنیم که اگر تو بیای به عقیده مسیحیت او بیچاره نه از کتاب خبر داره نه از عقیده خبر داره نه میفهمه حتی به سری یک روز یک کشیش بود آمده بود در افریقا چی میکردن در افریقا نوشه کرده که الحلیب و تحت السليب شیر میداد مرد من بی زیر صلیب باز یک شیر میده اون بیچاره مسکین از گشنگی میمارم میگه خوب به هر که می کافر مرا یک تو, تو تنام بده یا شقاقخانه رو جور میکنن هفتان تا شقخانه می قسمی بوکو که من به عیسی مسیح سجده میکنم خدای از باز مت داد داخل شقخانه اون میو بر گردیم میکفه حالا آره گردیم کافیه از برای خدا یک قسم کو باز میشه <تصفيق> رجوع به قرآن بکنیم از محفلا و هایی که به نفع دین اسلام نیست از این صرف نظر بکنیم و واقعا به قرآن حقیقتاً رجوع بکنیم و از کسایی که بسیاری کساس ما زان برای از عیسی بسیاری کسمون یاد میتن او مردوم میخزه بعضی کذابوگو یا محمد یا محمد یا محمد دیگه روز مصیبت میخد تو یا محمد یا محمد گفتش انال بگو یا عیسی یا عیسی خلاص پس باید بفهم که نه در دین مقدس اسلام غیر از یا الله نام مخلوق نگیر بگو یا الله در هر مشکل که داشتی به الله رجوع بکن در غیر از او بسیاری اوقات خود ما مسلمان ها سبب عظیم شیم که اولاد ما را از دست بسیاری اوقات از برادرای عزیز برادرای محترم یک فقیر یک بشارنه یک دو رو پشتو کار داره ما شما او مردم کسایی که ختم دعوتال میکنه در روز قیامت هر کسی که مسیح رو دست سجده دهی عزیز چرا که او غریب از غریبی بر از اون 20 روپیا کمک نمیکنه و ختم خدا دعوتال میکنه ختم که دعوتل و او را خدا قبول میکنه خیراتی که دعوتل میشه او رو خدا قبول میکنه این به خاطر رضایت الله هست که تو دکارت کسی که اومد دعوتل بر ازو می ختم کردیم چرا خدا بازی می از وقتی که مردم ختم دعوتل شروع کردن روز سه و روز, روز دو و روز سه و جمعه و چله موقام گرفتن پیسایی که باید در راه خدا مصرف شود پیسایی که زکات از اون باید زکات بدین پیسی که سرقاز بر فقرا و مساکین بدین اون رو برای مردمای پیسدار می پیسدار میخورن پیسداری که در ختم رفت و به توسط کار در اوتل نان خورد در روز قیامت هر کسی که مسیحی میشه الله اولی رو با میکنه می که اگر تو زکات میدادی تو خیرات رو برای فقیر میدادی و فقیر مجبور نمیشد که برای دروازی مسیحی ها رو بکوبن به این خیرات خدا خاطر رضای خدا بکنیم به این دارالایتامه رو ما بکنیم از قندوز برمه تلفن تیلیفون که استاد کوریایه آمدن در لیتا مجور میکنن اولادای مجاهیدی نمی مسیحی میسازن اولادای شهده های اسلام مسیحی میسازن چرا مردم نمی خیزن امروز تجار ماوتو برای یکوندو 50000 دلار دالر به خاطر یک دارالایتام 5000 دلار نمیدن بیایین برادرای مسلمان بیدار شوین لایتون بسازن مدرسه حفظ قرآن بسازن مدرسه درس دین بسازن اشتراک کنین در درس‌های قرآن شناسی بسیاری وقتا و استادا من درس قرآنو شروع میکنن. در بسته قریه کلاگی فیلم سایل تو که در مسجد درس قرآن است اولاد تا اولاد بی سالت در پیش تلویزیون شیشته از اون دو اون دویزم یاد میگیره از مسیحی مسیحیت یاد میگیره و تو خودت اولادت اینجا تشویق نمی کنی. در روز قیامت پیش خدا مسئول استی پدر پیش خدا مسئول استی مادر پیش خدا مسئول استی پدر کلانه مادر کلانه. رئیس رئیس فامیل او تا رجوع بتین به طرف قرآن اگر می که نجات ببتینشانه شونن، تا نه مجبور به که درس قرآن برشان ببت اولاه اولمیتان از یخنش بگیرین بگوین که تو عالم هستی تو مجبور هستی بشید تا مزت بر مادرس قرآن ببتین اولاادات تا به ظور صرف دا اینجا بشان تا که قرآن بواد در غیر از او دشمنای اسلام اولا شکار میکنه سر اولاد دل سوزان اگر در راه یک به شک درتنندور Ah, ça a ah. طرف مسجد نمیگی با شوالیه پشکک من نجات بتون باز به نماز جماعت میرم. اولاد داتهش دوزخ میره اولادت با کفر ساق داده میشن مسیحی میشن باز وقت در کلید بزنی در روز قیامت رسول خدا عزیز بایرق خود کشه که من نگفته بودم که اولاد تقم مشا بخون من نگفته بودم جوان تقم مشا بخون علمایی که در اختلافات مصروف هستن یکی رو وحابی میگن یکی رو میگن یکی به این اون به